اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الیف لام میم را تلك آيات الكتاب والذین نزیل خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم را اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است ولی بیشتر مردم ایمان نمی آفرند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الامر لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدا همان کسی است که آسمانها را بدون هایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند کارها را او تدبیر می کند. آیات را برای شما تشریح می نماید. شاید به لقای پروردگارتان یقین یعنی پیدا کنید و هو مد مَدَّ وجعل وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجین اثنين يغشي للیلا نهار في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و او كسیست كه زمین را گسترد و در آن کوها و نهرهایی قرار داد و در آن از تمام میوه‌ها یک جفت آفرید پرده سیاه شب را بر روز می پوشاند در اینها آیاتی است برای گروهی که تفکر می‌کنند و فیل الارض قطع متجاورات و جنات وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ این نفی ذالک لآیات لقوم و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند و نیز باغهایی از انگور و زراعت و نخلها و درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه میرویند و گاه بر دو پایه و عجیب تر آن همه آنها از یک آب سیراب میشوند و با این حال بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری میدهیم در اینها نشانه است برای گروهی که عقل خیش را بکار میگیرند. و این تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و اگر از چیزی تعجب میکنی، عجیب گفتار آنهاست که می گویند آیا هنگامی که ما خاک شدیم بار دیگر زنده میشویم و به خلقت جدیدی باز میگردیم؟ آنها کسانی هستند که به پروردگارشان گارشان کافر شدهاند و آنان قل و زنجیرها در گردنشان است و آنها اهل دوزخند و جاافدانه در آن خواهند ماند ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب انها از حسن و رحمت از تو تقاضای شتاب در سیعه و عذاب می‌کنند با اینکه پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است و پروردگار تو نسبت به مردم با اینکه ظلم می‌کنند دارای مغفرت است و در عین حال پروردگارت دارای عذاب شدید است و یقول الذین کفروا لولا انزل عليه آیت من ربی اینما انت منذر ولی کل قوم هاد کسانی که کافر شدند میگویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده تو فقط بین دهنده ای و برای هر گروهی هدایت ای است و اینها همه بهانه است نه برای جستجوی حقیقت الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغیض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان ماده حمل می کند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون میکنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نسل او مقدار معینی دارد عالم الغیب و الشهادت المتعال او از غيب و شهود آگاه و بزرگ و متعالیست سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من جهر بهی و من هو مستقفین باللیل و ساری بوم برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز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 و ما لهم من برای انسان مأمورانیست که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوابث غیرحتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت هو الَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خوفا وطمعا وَيُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالِ او کسی کسیست که برق را به شما نشان میدهد دهد که هممایه ترس است و هممایه امید و عبرهای سنگین بار ایجاد می کند و یسبیح الوعد به حمده والملائکت من خیفته و یرسل الصواعق تفیصیب بها من یشاء و هم و هم یجادنون فی الله و هو شدید المحال و رعد تسبیح و حمد او میگوید و نیز فرشتگان از ترس او و سائقه ها را میفرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن می سازد در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات الهی باز هم درباری خدا به مجادل مشغولند و او قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک دارد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلا الماء الي يبلغ فاه لوغاته هو الا ضلال دعوت حق از اوست و کسانی را که مشرکان غیر از خدا میخوانند هرگز به دعوت آنها پاسخ نمیگویند. آنها همچون کسی هستند که کفهای دست خود را به سوی آب می گوشاید. تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید و دعای کافران جز در زلال و گمراهی نیست وللله یسجد من فی السماوات والارض طوعا, وكرها طوعا وكرها و کرها طوعا و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه هایشان هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا خلقك خلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بگو چه کسی پروردگار آسمان ها و زمین است بگو الله سپس بگو آیا اولیا و خدایانی غیر از او برای خود برگزیده اید که حتی مالک سود و زیان خود نیستند تا چه رسد به شما؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا ظلمت ها و نور برابرند؟ آیا آنها هم برای خدا قرار دادند به خاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند و این آفرینش ها بر آنها مشتبه شده است؟ بگو خدا خالق همه چیز است و اوست یکتاب و پیروز انزل من السماء ماء فسالت فسالت اوديه بی فاحتمل السیل زبد الرابیه ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض کذالی الله خلافند از آسمان آبی فرستاد و از هر در و رود خانه ای به اندازه ای آنها سیلابی جاری شد سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه در کوره ها برای زینت زینتالات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند اما کفها به بیرون پرتاب می شوند. ولی آنکه به مردم سود می رساند، آب یا فلز خالص در زمین می ماند خداوند این چنین مثال می زند.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 و سلمی هاد. برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکوست و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می روند که اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش عزان آنها باشد همه را برای رهایی از عذاب میدهند ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم و چه بد جایگاهی است افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى اولو الالباب. آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذكر می الذین یوفون بعهد الله ولا همانها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند والذین یصلون ما أمر الله به ان یصلوا ويخشون ربهم ويخافون و يخافون, و يخافون سوء الحساب و آنها که پیوند را که خدا دستور به برقراری آن داده برقرار میدارند. واص پروردگارشان میترسند و از, می از بدی حساب روز قیامت بین دارند والذین صبروا بتغاء وجه ربی و اقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا و علی باید را او نلحزنت سعد او و آنها که به خاطر ذات پاک پروردگارشان شبایی میکنند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق می کنند و با حسنات، سیعات را از میان می برند. پایان نیچ سرای دیگر از آن آنهاست جنات عدنی يدخلونها و من صلح من آبائیهم و من صلح من و ازواجیم و ذریاتهم و الملائکتو یدخلون علیه من کل باب همان باقهای جاویدان بهشتی که وارد آن می شوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می گردند سلام عليكم بما صبرتم فنعم الدار. و به آنان میگویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان چه نیکوست سرانجام آن سرای جاویدان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 آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند لعنت برای آنهاست و بدی و مجازات سرای آخرت، الله يدي سطور الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع خدا روزی را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند وسیع و برای هر کس بخواهد و مصلحت بداند تنگ که قرار می‌دهد ولی آنها کافران به زندگی دنیا شاد و خوشحال شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی است و يقول كفروا لولا انزل عليه آیت من قل ان الله يضل من يشاء ويهدي ويهدي من اناب کسانی که کافر شدند میگویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده است بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که بازگردد به سوی خودش هدایت می کند آمنوا تطمئن الله. الله تطمئن آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌آمد. آنها آمن و و که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیز ترین زندگی نصیبشان شان است و بهترین سرانجام ها. كذلك أرسلك في أمّة قد خلت قد خلت من قبلها أمّل تتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توكلت واليه متبت همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نمودیم بر آنان بخانی در حالی که بر رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند بگو او پروردگار من است معبودی جز او نیست بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست ولو ان قرانا سنرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتا وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند یا زمینها قطعه قطعه شوند یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود باز هم ایمان نخواهند آورد ولی همه کارها در اختیار خداست آیا آنها که ایمان آورده اند نمیدانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت میکنند و پیوسته بلاهای کو بنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد میشود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود میآید تا وعده نهایی خدا فرارسد. به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمیکند. ولقد استهزع برسل من قبلك استهزا نکردند پیش از تو مورد استهزا قرار دادند من به کافران مهلت دادم سپس آنها را گرفتم ديدي مجازات من چگونه بود؟ افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت و جعلو و جعلو لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بل نزيهنا للذين كفروا اكثرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و اعمال همه را میبیند همچون کسی است که هیچیک از این صفات را ندارد آنان برای خدا هم قرار دادند بگو آنها را نام ببرید آیا چیزی را به او خبر می دهید که از وجود آن در روی زمین بیخبر است یا سخنان ظاهری و توخالی می گویید نه شریکی برای خدا وجود ندارد بلکه در نظر کافران دروغ هایشان زینت داده شده و بر اثر ناپاکی درون چنین می پندارند که واقعیتی دارد و آنها از راه خدا باز بازداشته شدند و هر کس را خدا گمراه کند راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت لهم عذاب في الحياه الدنیا ولعذاب الآخرت اشق وما لهم من الله من واق در دنیا برای آنها عذابی دردناک است و عذاب آخرت سخت است و در برابر عذاب خدا هیچ کس نمی تواند آنها را نگه دارد مثل الجندتی وعد المتقون تجری من تحتها و دائم و عقب الذين اتقوا و عقب الكافرين توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که نهرهای آب از زیر درختانش جاری است میوه آن همیشگی و سایه اش دائمی است این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است والذین آتیناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إلیك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ایلیه ادعو و ایلیه مآب. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده از آن بر تو نازل شده خوشحالند و بعضی از احزاب و گروه ها قسمتی از آن را انکار می کنند بگو من مأمورم که الله را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من بسوي اوست وكذلك انزلنا حكم عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق همون كه به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادیم برتونیز این قرآن را به عنوان فرمان روشن و سریحی نازل کردیم و اگر از حوث آنان بعد از آن که آگاهی برای تو آمده پیروی کنی هیچکس در برابر خدا از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد و لقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا وجعلنا لهم أزواجا وذریة وما كان لرسول أن یأتی بآیة إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ما پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمیتوانست از پیش خود معجزهای بیاورد مگر به فرمان خدا هر زمانی نوشته ای دارد و برای هر کاری موعدی مقرر است الله ما یشاء و یثبت ام خداوند هر را بخواهد مهو و هر را بخواهد اثبات می کند و ام الكتاب لوح محفوظ نزد اوست واننا نرينك بعض الذين عيدهم او نتوفىنك فانما فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب و اگر طارئ از مجازات ها را که به آنها بعد میدهیم به تو نشان یا پیش از فرارسیدن این مجازات ها تو را بمیرانیم در هر حال تو فقط معمور ابلاغ هستی و حساب آنها بر ماست اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اقرافها والله یحکم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین می و از اطراف و جوانه به آن کم می کنیم؟ و جامعه ها،, ها و دانشمندان تدریجا از میان می روند و خداوند حکم می کند و هیچ کس را یا جلوگیری یا رد احکام او نیست و او سریع الحساب است. وقد مكر الذین من قبلهم فلله المكر جمیعا یعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار پیش از آنان نیز کسانی ترحها و نقشهها کشیدند ولی تمام ترحها و نقشهها از آن خداست او از کار هر کس آگاه است و به زودی کفار می سرانجام نیک در سرای دیگر از آن است و الذین كفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و ومن و عنده علم الكتاب آنها که کافر شدند میگویند تو پیامبر نیستی بگو کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن نزد اوست میان من و شما گواه باشند.